اللهم <سؤال> صل على النبي يا عليه اللهم على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى حميد مجيد موضوع دیگر انتخاب کرده بودم بخواستم که صحبت بکنم ولی از که خبر شدم که اعتراض از هست جوانان بدل و از دوغاباد و از دیگه که من نامش درست نمیفهمم از اینجا تشریف آوردن از منطقه از نزدیکای آسیای خشک اینجا یک بشارت بسیار خیر است در شرایطی که ما, ما می بینیم که دشمنای اسلام میخواهند که جوانای ما را در در شرایطی که ما شما بینیم که دشمنای اسلام میخواهند که جوانای ما را به طرف بدیها و مصروف بسازند و میلیون ها میلیون دلار مصرف میکنند تا اینکه جوانا را از مسیر شان از دینشون از شان دور بسازند و اونا را به طرف گمراهی بکشانند ولی الحمدلله رب العالمین که جوانای ما هر روز روشن شده میرن و مجالسشان بیوزی که مجالس گناه و رقص و فساد باشه، به خانه خدا رجوع میکنن و الله تعالی ما از خدای عز و به تمام شما دارم میگم که فروددگاران همین قسم که رسول کریم صلی الله علیه و سلم گفته که هفت طایفه از امت مککسای هستند که در روز قیامت زیر سایه عرش خداوند متعال جل می باشن در روز که مقدار از هزار سال دنیاست فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة مما تعدون امیدوار استم که ای جوانایی که از قریه های مختلف به این مسجد مبارک تشریف آوردند، همه خدای از خدای عصر و جل ما و شما را ای جوانا و همراه ریش سفیده بزرگوار کل ما و شما را خداوند چونکه در زیر سای عرش خود در روز قیامت نصیب بکنن خب اگر صفحات قرآن عظیم شانه ورق بزنیم قصه های قرآن پنده های قرآن مورد مطالعه قرار بتیم تاریخ انسانیت وقتی که شروع میشه سرنوشت بشریت از دو جوان آغاز میشه به نام حابیل و قابیل هابیل ممثل جوانای با ایمان و با عقیده هست که هیچ چیز او تحت تاثیر خود قرار نمیتن و قابیل در مقابلش ممثل جوانای شیطان صفت است. قابیل تاریخ بشریت آغاز می به خاطر رضایت خدای عزا وجل خون خود می ریزانند ولی تاریخ زیبا آغاز می کنن. قرآن برما از مشان بر ما از قصه حابیل و قابیل صحبت میکنم. باز هایم در صفحه دیگه قرآن باز هم از جوان دیگی صحبت میشن. جوانی که در یک منطقی زندگی میکنه که تمام از اونها بت و بی و گمراه هستن. جوان هر قدر کوشش میکنه که از طریق عقل و فهم بر از این مردم بفا که این مردم ای کارهایی که شما میکنین ای زشت است ای درست نیست ای غلط است نمیشه که یک انسان بره به طرف آفتاب و آفتاب که خودش مخلوق است ایره پرستش بکنه و یا محتاب پرستش بکنه ولی باز هم میبینه که این مردم به ندای عقل گوش نمیدهد که باز هم مردم مین بود خودشان چوبه خودشان به شکل بود به شکل مجسمه می باز بر سجره میکنن. آ خدایا او مردم بود هیچکسپ هست؟ خودتان چوب میسازن خودتان ب میسازن و خودتان باز میین از ای بود بر از این بود که ساخته دست خودتان است به سرش سح میکنین بازم می بینه که کسانی که گمراه هستن بیدین هستن و وقتی که خداوند یک انسانی را در خود گرفتار کنه گوش داره لکن گوش شنوها نداره چشم داره لکن چشم بینا نداره قلب داره لکن قلبی که ها را درک بکنه نداره ای جوان چی کنم با این مردم به کار عملی فیزیکی می و باز اینا را بازم از دیدگاه عقل مخاطب قرار می تونم توره گرفته می رو بودخانه بودهای است ابراهیم علیه السلام جوان است در سن اجدا و بیست سالگی فتن یقالو لبو ابراهیم فتا در زبان عربی جوان میگن. بطه ها را مشکلانه. وقتی که این <تصفحات> مردم میاندرد بین مردم قریه جمع میشن مردم از طرف میاند چیگه پس اله که خدا ما اله بیارید که بطه ها را معبودهای ما را چیزهایی را که پدرها و پدر کلانهای ما برزو سر تعظیم میکردن اله تو باید از رواج هایی که بوی جاهلیت از اومیت تو باید در مقابل از او مبارزه بکنی و ایستادگی بکنی تا تو شوی مثل ابراهیم مثل اسماعیل مثل حابیل خب کی کار کرده؟ کی کار کرده؟ یک کسی میخواد یک جوان شنیدم که او همیشه در مورد بدهی خانوی زش میگه. فتن یک جوانی بود یقارو له ابراهیم آه ابراهیم ایک کار کردن یک برین ابراهیم بیارن فاران کلگی میرن صدا میکنن ابراهیم بیارن. ابراهیم بیارن ابراهیم میرن و کلگی بچی کاکا بچی ماما از خودگیش دوستاش کلگی بزده ابراهیم علیه السلام قرار دارن و خدای عزوزدل در قرآن عزیم شان میگه که ابراهیم علیه السلام یک امت بود یک نفر یک لک نفر امت کفر تشکیل میده و یک نفر ممثل امت اسلام هست. یک نفر. از این خاطر خدای عز و این یک جوان در مقابل یک امت دیگه. اونا امت باطل و یک نفر امت حق هست. خب ابراهیم علیه السلام هم میرند اینجا. تو جوان تو این کردی؟ ابراهیم علیه السلام میخوای که بر نشان بل هم از اینا نشان بته بلفعلهو کبیرو همهاذا بعضی از مفسیرین بین که کبیرو همهاذا منظورش دستش است یعنی ای قوت ما ای بازوی من کار کردن ولی اشاره با انگش خود به طرف بوتو کلان میکنن این اسلوب توریه میگن. توریه ای است که مقصد در ظاهر در باطن یک چیز است ولی ظاهراً لفظ را یا اسلوب را استعمال میکنی که جانم مقابل دیگه قسم تصور بکنم. ابراهیم علیه السلام میگه این کاره اینی بلکبیر هم هاده این کاره این کرده. ولی در مقابل از او اونا سهل میگذن به طرف بود اونا قامدن و گفتن که ای ابراهیم تو دیوانه هستی. بچه تو میتونه این کارو بکنه. بو که نمیشنه نبا، حرکت کرده نمیتونه دزددنم نمیتونه هیچ کار کرده نمیتونه این چی تو؟ عقل تو تصور میکنه که دخیسی برای ما معرفی بیتی و دروغ بگی و بگویی که این ای بچه ای کار کرده. ابراهیم علیه السلام دلیل خودشان و سر خودشان دوباره استعمال میکنه که خوا. بسیار چهار شما ما نگفتند که هیچ کار کردنم از جای خودشور خوردنم میتونه، مرکت کردن هم میتونه تبره گرفتن هم میتونه کسی حتی اگر در سر زیبوت یک دانه تاج و تلاره هم باریم و دوز بیه ایوی ایره ببرد در مقابل از دو حرکت هم از خود کرده نمیتونه شما نگفتیم ای گپه بلی ما گفتیم وقتی که شما ای میگین پس چطور شما تو یک کسر پرستش میگوین که حرکت کرده نمیتونه تمام استفاده منفی رو داره پس شما چرا از عقلتان استفاده نمیکنید وقتی که من اعمق در میگم که ای که تو او اورا شکستان من میگم تو دیوانه هستی تو دروغ میگی پس شما چطور شارهسن که با تو یک بو که هیچ حرکت کردن نمیتونه کسر شکستان در همه در مقابل کسر تصور نمیگرد ولی باز هم این مردم باز هم این مردم وقتی که چشمی یک خدایا همیشه انسان بوده که پروردگارا من چشم دادی لکن خدایا من چشمی بینا نصیب کو خدا بهرا من گوش دادی لکن گوش شنوا نسیب بکن خدا بهرا من قلب دادی، قلبی متوازی برای من نصیب نصیب بگو که وقتی که حقم شنوم، شونیدم تانم بسیاری کسا هستند که اونا شاید به شیطان های انسانی مبدل شدن. وقتی که برش بگویی از حق در مجلس حق ششتم میتونه، گپ حق شنیدن میتونه، نشستن در مجلس حق برش غم باشه چرا؟ چرا که او ایسان است که شیطان او را غلام خود ساخته ولی نمی‌پاهم میگه من بسیار هستم من بسیار متفکر هستم من بسیار دانشمند هستم من بسیار پروفسور و فیلسوف هستم نمیخوام که کفاره بشنم این مجلسی که شما میین این درسی که شما این ایداش است ای گپ. ای گپ گپ کاپازین است گپ شیطان است که از آغاز وقتی که حرکت کرد گفت من چطور من حضرت آدم علیه السلام احترام بکنم خلقتنی من نارن و خلقتهم من مرا از آتش خلق کردی و از از ازگل ابراهیم علیه السلام در مقابل ازنا دیدن که هیچ دلیل ندارد چون کفر دلیل ندارد انسان بی دین دلیل ندارد انسان بی عقیده دلیل ندارد انسان مشرک عقیده دلیل نداره بت دلیل نداره وطن فروش دلیل نداره چی داره همیشه از زور خود استفاده میکنه تا اینکه که صدای حق خاموش بسازه. دست می می چی کنیم به این ابراهیم علیه السلام دفن در می دهی می شن زایی دیدن ازدرش می دهید آتوش در می ده. به شکل منجنی ابراهیم علیه السلام کل قومش کل قبیلهش کل قریش ولی ابراهیم علیه السلام جوانست با ایمان جوان است باحکیم جوان است که خط فکریش ثابت است جوان است که راه برش معلوم است صراط المستقیم درک کرده حقیقت درک کرده چشم بینا داره چشم چشم نیست چشم بصارت چشم بصیرت داره که امور از عقبش میبینه که عاقبت این چی میشه و عاقبت کارم چی میشه ابراهیم موحد است ابراهیم خداپرست است ابراهیم یک تاپرست ابراهیم تسلیم زمانه نمیشد ابراهیم تسلیم ضرب المثل های جاهلانه ای که زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز ایده ای ضرب ای المثل شیطانی که وقت دیگرا تسلیمت نشدند تو تسلیم دیگرا شد ایده شیطان همیشه برای مردم تلقین میکنه لکن ابراهیم علیه السلام با این ضرب المثل های یوچو نادرست زندگی نمیکنن بلکه با عقیده قوی زندگی میکنن و راهش معلوم است اگر من کشته شوم اگر من از بین برم، اگر هر چیزی شوم مزاجدین قربانی هست تا وقتی که قربانی نتی. ما که برای حق برسید تا وقتی که از انسان پرستی و مخلوق پرستی قلبت دور نکنی تا وقتی که از رواج های باطل و بچه کاکایم اوتو میگم و بچه مامایم اوتو میگم و پدرکلانم این قسم عادت داشت و مادر کلانم این قسم فرمایش داشت تا وقتی که از این خدا خلاص نکنیم دروازه های رحمت الهی باز نمیشه ابراهیم است که خدا به خدای عزوجل تسلیم میکنه بفرمایید هر چیزی که میکنین ما آماده هستم ابراهیم علیه السلام در آتش میپردن وقت ابراهیم در آتش میپردن در اینجا ملائکه و پیش ابراهیم ای ابراهیم ما خدا هستم مشکلی داری؟ ابراهیم علیه السلام برش یه که بله مشکل دارم لیکن مشکل کشا تو ملائکه نیستی اما یوجی والمضطر ازادا کی میفنه انسانه که در حالت استراری و سختی قرار داره او دعوت از و دعای را قبول بکنه بغیر غیر از ذات الله جل جالو بله ملائکه من مشکل دارم لکن مشکل کشایم ذات دگیه است که به تو ضرورت نیست جبرئیل امین و پیشش میگه یا ابراهیم من جبرئیل میگم که مشکل داری ابراهیم میگه بله مشکل دار لاکن کسی که مشکل حل میکنه ذات الله جل جلوه است بگذار که اون مشکل مرحل کنه رای تدویر رای که جامداد درک نتارند درک سنگ اما قرآن بخاند <تصفح> خدای عزوجل وجل حکمش سر هر چیز جایی میشه. حتی سر آتش. خدای عزیز وجل ابراهیم میبینه. که ابراهیم است که قلبش به خدای عزوجل وابسته وابسته است. به هیچ کس دیگه سر تسلیمی قرار نمیده. جوان با ایمان با عقیده تمام قومش بر ضدش، تمام مشرکین و پرستا بر ضدش، ولی ای جوان در مقابل همه استاد است و ایمانش قویست و آتش میپرده از همه اسباب دنیاوی رابطش قط است اینجاست که در های رحمت الهی باز میشه قلنا یا نارو گفتیم ای آتش کونی بردن و سلامن علی ابراهیم خدای از زوجن خطاب با آتش میکنه که گفتیم کل گفتیم یا نا ای آتش کونی بردن سرد و سلامن علی ابراهیم سلامت نگهدارنده بر ابراهیم علیه السلام با فصلی میکرام میگن بسیار سوال میکنن خود خدای عز وجل میگفت که ای آتش سرد بردن سرد چون؟ چو گفت و به خاطر ازی گفت که سرد شو و سرد سلامت نگه دارنده اگر نمیگفت به این شکل درجه برودت در بین آتش آنقدر زیاد میشد که ابراهیم علیه سلام در کوت آتش از خرک درجه حرارت دست تحت سفر می شد برودت دست تحت سفر می شد پنسد تحت سفر می شد اعزاد تحت سفر می شد ابراهیم علیه سلام به اساس سردی و کسرت برودت منجمد می شد خشک می شود. یخ میزدش. لكن لیکن خدایی از حجر ورش بخیر قال لا گفتیم برکونی بردم و سلام علی ابراهیم بحادش خداوند برای ابراهیم علیه السلام گلزار می‌سازد چرا؟ خاطر جوانست با عقیده جوانست که تسلیم روزگار نمیشن تسلیم فیلم چند فیلم و چند سریال دشمنای اسلام نمیشن تسلیم چند حرکت جاهلان نمیشن شخصیت ایمانی خود در مقابل و دالر و افغانی و کلدار نمیتروشن بلکه اونمو قسم مستحکم در جای خودست خدای عزواجل در واضح رحمت خدا برش بازن اگر از ابراهیم پیش بریم جوان دیگه حضرت اسماعیل علیه سلام حضرت اسماعیل جوان است نوجوان یکی جوان است یکی نو جوان نو جوان که نو به مرحله جوانی چهارده و پانزه و سیزده و چهارده و پانزه سال از سن نو جوانی است که انوز تارهای برودش نو نو حرکت کرده در بریشش انوز دانه انوز رخصارش سر نزده بازن اگر با ایمان هستی با اعتقاد هستی منتظر باش که منتظر باش منتظر باش که امتحان خداوند سر تو می اگر بگم من مسلمان هستم و امتحان نمیشم ما مسلمان هستم از طرف دشمنای اسلام تهدید نمیشم، از طرف خائنین و وطن فروشا مورد تحقیق قرار نمیگیرم. من مسلمان هستم مرای ابراهیم و اسماعیل ها گرفتیم و هیچ وقت برای ما هدیه زبان بزشی استعمال نمیشه و الفاظ بعد در مقابل ما استعمال نمیشه. نخیر ای اشتباه میکنن وقتی که مسلمان بودی حتما مورد امتحان خدای عزوجل قرار بگیری. اینجا ابراهیم است که. آله در جوانی قطع یک عظمت پیدا کرد که خدای از وجل برش گفت که تو امت هسته ابراهیم علیه السلام آتشه برش گلزار ساخت باز بازم امتحان دیگه خداوندی سر ازیمه پسر نوجوانش اسماعیل ابراهیم تسلیم از به حکم خدای عز وجل ولی بچه نوجوان تو تیجیگر جگره برای بچی ختمه یکی یا بنایه اینی آراف المنامی انی اذ بحق بچه کنگی شرین دلم من در خواب دیدم خواب پیغمبران وحی در خواب دیدم انی اذ بحق که من تو را بارگاه خدای عزوجل و تقدیم میکنم امتحان خدای عزوجل و است يا ابني إني أرى في المنام أني أظن فانظر ماذا ترى نظرياتي كيف نظرت؟ كيف يمكن؟ هنا وجواره ما برنامه دارم، ما باید کورس بخوانم، ما باید درسای خدا خلاص کنم، ما باید دوازدار خلاص کنم، ما شامل پوانتون شامم. اگر ما در آی خداوند قربان شامم، باز برنامه ما چطور میشه، سیستم زندگی ما چطور میشه؟ ایگه بار ابراهیم علیه سلام وقتی که حکم خدای از زوجل شد، برشمه یه که یا عبد افعال ما تعمل ستجدیونی انشاءالله منز؟ سابرین یا عبد ابراهی اسمایل علیه سلم این او جوان برای پدر خود برای پدر خود کمر پدر خود در راه حق بسته می یا ابتی ای پدر من افعل ما تا امر بگو چیزی که دلتو می شمه چیزی بگو که تو امر امر کرده میشی خدای عزوجل تو رو میگه ای پدر تو کاری رو نکو که دل تو میخواه شاید دل تو بخواه که من را قربانی نکنی شاید تو خاطر که پدر سی سر من رحمته بیای که چه تو امر اولاد خدا در مقابل تیغ قرار بدا از این خاطر میگه که یا ابت فعل ما تو امر چیزی که خدای عزوجل سر تو امر, امر کرده شده تو امر نگو که تو امر دو امر میکنی در زبان عربی ع مجهول است یعنی میگه کسی که تو امر کرده که او خدای از و, و است مطابق امرز و حرکت کن سطجددون اینشا الله و من صبیی من از او جوانای ب غیرق تو بیمان نیستم که با یک چهمالک و یک تو فانک کمره به شش جای بشکره و مجرده که یک با یک چهار دلار رو میبییم فورا نفسم برایت به خاطر یک بورس و به خاطر از که مسیحی یا میخوایم م من حرب و مرا هندو اون دوها میخوایم هندو رو و کسانی که مثلا فرهنگ مره ضد از او کار میکنن ضد دین ما کار میکنن زده اخ... دینی ما کار میکنه به خاطر ازون خدا تسلیم زادم میگه خیر یا البته فعل ما تو مر ستجیدون ان الله من الصابرین ان الله تعالی تو مر از جمله صابرین خواهی یافتی درس عقیده برای تدر از عقیده خلی صحبت میکنه کی یک نوجوان امر خدا را قبول بوک در کاری که میکنی، ان شاء الله بگو و من هم اگر چی عقیده دارم، لکن به توفیق خدای از واجل نیاز من دستم، ان الله من است سابرین. من همیشه آیا آیا خدای عز جل خدایی که ذات با عظمت است خدایی که رحمان است خدایی که رحیم است خدایی که بخشاینده است خدایی که بر یک که خود در بین سنگ روزی میرسانه و خدای عز و جل اینجا ابراهیم و اسماعیل در این امتحان اما تو رها میکنه بلکه باز هم خدای عزوجل به ایوازی عزی برای بر ابراهیم علیه السلام گوسفندی روان میکنه که ابراهیم علیه السلام اون رو بکنن. ابراهیم بر کارد میگه که کارد کشت میکنن. وقتی میخواد که کارد کشت بکنن که عزت اسماعیل علیه السلام قربانی خدای از جل بکنن. کارد به زمین میزنن. عصابش خراب میشه که او کارد چرا نمیبوری؟ ولی کارد به چارن بر زبان قال نه. در زبان حال بر ابراهیم میگه یا ابراهیم تو میگه که ببرد خدای از میگه که نبورد. کی خامل بکر. خدامی یک نه بر. مبریدن نمیتونم. وفادینه او به ذبح عظیم خدایی حضر مگه جل باز ما برشان یک زبیهی بزرگی را گوزفندی را برش از بارگاه خود برش تقدیم کردیم که بگی ابراهیم قربانی تو قبول شد بگی اسماعیل و جوان مسلمان قربانی تو قبول شد و شهامت و شجاعت و غیرت و ایمان تو در اینجا ثابت شد در می قسم جوانای دیگه را بخانه چند نفر از جوانایی هستند که در مقابل یک پادشاه بتپرست قرار میگیرند اصحاب کف ولی تسلیم نمیشد ایمان چی هست شخصیت چی است قوت ایمان چی است شخصیت ایمانی چی هست کی با شخصیت است کی بی شخصیت است ایمان قوی او است که انسان تسلیم کس دگیره نشه شخصیت ایمانی قوی است که تسلیم روزگار نشد وقتی که روزگار هر قسم مصیبت ها نبرد هر قسم آلوتا برد امتحانات مختلفه برد انسان با شخصیت تسلیم نمیشه اما انسان هایی با شخصیت اساس گفته دکتر یوسف قرظاوی او مثل چی است مثل یک برگک که خشک است وقتی که هر شمال میزنهش هر طرف میپردش یک روز غلامی روزها رو میکنه غلام روز است. دگر روز غلام امریکایی میشن دگر روز غلام چینایی میشن دگر روز غلام شرق است، باز غلام غرب است، تا ای که از زندگی به شخصیت بمرو و برو و بالاخره مورد نفری نکنه که قرار بگیره یه انسان های به شخصیت هست اما انسان با شخصیت مثل کوه است که وقت متأثر به حوادث های زندگی نمیشد در امتحانات شکست نمی خورد بلکه انوز هم در تاورنج های زندگی انوز هم را قوت و متانت و غیرت و ششاعت و ایمانش هر هم قوی میسازد ای جوانان اصحاب کف بالآخره به خاطر این ای که میبینن که در این مجتمع جاهلی در این جامعه مفسد زندگی کردن را میتونن رای حجرت پیش میگیرن و میرن به جای پناه و غار میرن و در اونجا قصه بر شما معلوم است که در اون قصه تقریبا سی ست و چند سال خدای عزواجل اینا اونجا حفظ میکنن و دوباره اونا را زنده میسازن و بر مردم میفهمانه که خداوند این دو زنده شدن باد از مرگر به شکل عملی بر از اونا نشان می کی هستند جوانایی هستند در مقابل که قرار می در مقابل امپراتور بت در مقابل پادشاه ظالم در مقابل نمایند های پادشاه که قاتل و ظالم هستند لکن با اونو مو شجاعت قوت خود خدا ایمان خود حفظ می کنند و تسلیم باطل پرستانه نمی همین قسم اگر بیم صفحات قرآن و رقص بریم قصه های از جوانای مسلمان است و دا دا اگر بیم بیشتر و بیشتر ببینیم که وقتی که حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث میشه حضرت علی جوان ده ساله از حق خبر میشه آیا در قسمت پذیرش حق با مادر و پدرم مشوره کنم نه وقتی که حق است توحید است ایمان است عقیده است تسلیم کس میکشوی ابراهیم علیه السلام جوان است نوحید است لکن پدرش کاکاش عقاربش بتپرست هستند سعدی میگه پسرک وقتی تو در قبر مانند، نگویم که پدرت کیست گویم امانت چیست تو جوان تو جوان به امرای کسی بیشی که از تو گل بسوزا که در جامعه بتانی فضای جامعه را خوشبو بسازی رسول اکرم صلی الله علیه و مبعوث مبعوس میشه جوانایی در چارچرد پیغمبر صلی الله علیه و سلام سن پخته و که سالی مثل ابو جهل ابو لهاب اینا وزده پیغمبر صلی الله علیه و سلم، امیه ابن خلف کلش کلون صالای هستن که دعونه اونمو کفر و بی دینی و گمراهی خود اروز اصرار میکنن ولی ذهن جوان شهامت جوان عقیده جوان بسیار قوی است. این جوان, جوان ها در اطراف پیغمبر صلی الله علیه و وسلم گرد آمدند و قهرمانانه از پیغمبر صلی الله علیه و وسلم دفاع میکنند. چرا چرا این جوان ها درس از کجا گرفتند؟ درس عقیده درس توحید درس ایمان ها از کی گرفتن از مکتب نبوت سعدی در یک بیت خود چی میگه میگه گل خوشبو در همام روزه قسم میکنه یک روز به همام رفتم در همام میگه یک تو تا گل دیدم گل سرشوی گل خوشبو در حمام روزه رسید از دست محبوبی به دستم کسی؟ از دوستان یک تو تا گله داد که از گله سرشویی سرطبه شدید گل خوشبو در همام روز رسید از دست محبوبی به دستم بعد او گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم تو مشک هستی تو گل سرشوی هستی یا مشک هستی یا همبر هستی چقدر بوی زیبای فرید یه چقدر خوشبوی هستی بگفتا گله میگه بگفتم من گله ناچیز بودم ولی که مدتی با گل نشستم بگفتم من گله ناچیز بودم ولی که مدتی با گل نشستم کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم من گل خاک بودم بویم بسیار خراب بود لکن جایگاه در پالوی گل بود که از خوشبوئی ازو من استفاده کرد. او جوامعی که آمدند شامل مکتب نبوت شدن شامل بوهمتون حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شدند اینجا بود که اجوارا با اونم قوت و ایمان و شهامت از دین مقدس اسلام دفاع می و پیغمبر صلی الله علیه وسلم می گفت که این جوان ها بودن که کمره مره بزد کردن بودن که کمر مره بزد و واقعا هم این جوان ها شما تصور بکنیم برادر عزیز فکر کن که فکر کن یک کسی از دوستایت سرش حکومت عمله میکنه. و می که آله و از کرای امریکانی را از بین میبرن تو میری در بستاری از خواب میکنی و می که او آله اگر گیرش کنه این از بین میبرن ولی عصرات علی پیدا اده رسول خدا صلی الله علیه سلم در بستاری از خواب خواهو میکنن که اگر مشذکین چند نفر جوان او قتل کردن که اونا بیاین و یک بار بالای از بکنن پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکشن ولی از پیغمبر سن میرن به غار و حضرت علی در بستری از میمانه yes اگه تصور واقعی بکنن ببین که قوت ایمان حضرت علی کماله جو چون حضرت علی چی میگه میگم ما کشته شوم بریزه ما را ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده باشه. فرق اس بین او جوان که به خاطر رسول خدا خون خدا میریزن و بین این لو جوانی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم توهین و تحقیر میشه کارتوناش ساخته میشه و این نو جوان خواست و مدیعان و و تماشای فل مصروف است و او حضرت علی هم در روز قیامت خیست و گفت که ای پیغمبر خدا ما امت تو هست و ما ما و تو هم حافظی و گفتیم که ما هم امت تو هستیم ببینید که فاصله ره از کجاست تا کجا, است و با کجا؟ از خود سوال بکنیم که آیا ما در جمله او جوانانی که در روز قیامت در زیر بیرق رسول الله صلی الله علیه وسلم حشر میشه آیا ما در او جمله خاک بودم حضرت مصهب ابن عمیر یک صحابی است یک جوان است وقتی میخوان که هجرت بگرن میگن مصعب ابن امیه وقتی که لباس میپوشید همه بچیری از او ایران میمانن که ای قدر زیبا هست چی چشمای زیبا و این لباس در در تن از این نموده حضرت مثب ابن امیه رضی الله تعالی عنه هجرت میکنن وقتی که هجرت میکنن چند نفر از مشکین از پشت سرش میاین و می خواهد که حضرت مصعب ابن امیه را بکنن مصعب ابن امیه با قوت ایمانی که داره برشان شان که او مردم شما می که پشت پیش من بی تیرهای زیاد است تا وقتی که این تیرهای من خلاص نشودن و شما می که من از جووانای ساده و لوده و رقاصه و خنده بازار و لوده بازار نیستم من جوانی هستم که در مکتب نبوت کلار شده ایم و شعار من است که لا اله الا الله محمد و رسول الله صلی الله علیه و یک تیرم که بانه خود تسلیم تان نمیکنم. و شما میفهم که من خوب تیرزن زن ماهر هم هستم. یک تیرم که بانه ایلایتان نمیتم. و میفهم که تیرم که بزنم وقت تقدیرت خورده اتیاد ده بکن. سهیست که تزیاد از تعدادت ولی ما ایمان قوی و شجاعت قوی و مطابق حکم خدای عزیز و جل و احیب دوله من مستطعتم من قوتین خدای عزیز و میگه که شما باید خدا قوی بسازین شما باید نسبت به اون دشمنای اسلام قوی تر باشین که اگر در یک جای برابر میشی در جهاد در از یخن اسکر امریکایی میگیری بتانی بایانمی یک دست گردنش بر زراخ بکن ناره تکبیر ناره تکبیر ناره تکبیر ناره تکبیر این عزت نصحب ابن آمه هست ولی میگم ببرتان یک چیز دیگه هم میگم که اگر تیران خلاش بازم میفهمم که ما بسیار جوان قوی هستم بازم کتتان میجنگم چند نفر تان کت تیر هست این میبرم و چند نفر دیگه تان با خشتی و با دست و بامشت و با بکس و بال با لغان از وینیتان تون میبرم باز با دزو اگر کامیاب شدین کامیاب شید علاوه کن یک گپ دیگه هست که ما برتان میگم در فلانی باغ ده کجا مال و زندگی و خانه میگه ما اونم باغ ما اونم مال کده هست بیا راه برای شما میتون تان نشان میتون که در کجا هست برین بگیرین چی میگین که مشترکین وقتی که مال دیدن پیسہ دیدن گفتن ها ده کجا هست سبب ابن دروغ ننگفت که ما برای جا دروغ بوی جای غلط عموجک پیسہ و چیزای خودا گور کرده بود بود امروزه باز نشون داد وا گفته چی کی می رفتن کولشاط پشتو پیسہ گرفتن مثل که امروز دشمن های اسلام و مسلمان ها رو برعکس زید. سابق مسلمان ها از مال و از زایی خود تیر بشودن تا اینکه به خاطر اسلام مبارزه بکنن به خاطر اسلام هجرت بودن آل دشمن های اسلام برعکس سیاست سرای مسلمان ها تطبیق میکنن و مسلمان های در مقابل پیسہ و درهم در مقابل دلار می ببینیم که چی فرق از بین جوان مسلمانی که وقت خاطر دین مقدس اسلام از زمین و باغ و مال و دارایی خود کلش درمش به خاطر رضای خدای عظم و فرق از بین جوان ای که خاطر صد دلار و دو دلار هر چیزی که سرش دشمنای اسلام کرد به اون خود تسلیم می ای جوان باید رقاصه شوه ای جوان باید در گلبرگ ها برقص تا که شخصیت خود مثل راقصا عمر عزیز بتا ای جوان باید پفکایی های لودگی بگوید تا اینکه بی شخصیت شوه ای جوان باید بسیار لعده تربیت شوه ای به این تربیت شوه بی دانش باشد بی فرهنگ باشد از دینش کشاندش تا ای تا اینکه یک منبس یک برگ خشک باشد که این طرف این طرف که طرف پفش و از ای جوان های بی ایمان و بی غیرت باز ما میتونیم که ما تنها شما تحت تصرف خود بریم این فلان دشمنای اسلام است ولی او جوانا ببینن با این جوان است ما باید از درس از او جوانا درس شهامت و غیرت و قوت و ایمان بگیریم پیغمبر صلی الله علیه و سلام می که اولین سفیر اسلام روان بکنه به مدینی منوره اولین سفیر اسلام حضرت مصحاب ابن عمر است کبار صحابه حضرت اب صدیق حضرت عمر حضرت بزرگترین شخصیت های صحابه کلشان وجود داره لکن اینجا رسول کریم صلی الله علیه و سلام کیرا من عیس در خود می چون سفیر سفیر اسلام باید فساحت خوب داشته باشد، بلاغت خوب داشته باشه منطق گفتارش شدین داشته باشه الفاظ درست داشته باشه استدلال قوی داشته باشه علم و دانش قوی داشته باشه تقوای خوب داشته باشه خوب قرآن شناس باشه خوب قرآن بخونه خوب همه چیز رو بفهمه از خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبینه که تمام صفات چری جوان چری زیبا زبانش زیبا الفاظش زیبا گفتارش زیبا وقتی که قرآن میخونه زیبا میخونه که در قلب انسان تاثیر میکنه اینجاست که پیغمبر مر خدا صلی الله علیه و سلام نخستین سفیر اسلام به یک جوان روان می کنه ای تنها حضرت می ابن عمیره و مصعب ابن امیه وقتی که بمدینه منوره میره از ازنا را وقتی که جمع میکنن قد ازنا صحبت نکنن بلاخره کلی ازنا با قوت ایمان و قوت شجاعت و قوت فصاحت و بلاغت و قوت استدلال حضرت مصعب ابن امیه حیوان میشن و تسلیم میشن و مسلمان میشن و مدینه منوره ما استقبال حضرت صل رسول اکرم صلی الله علیه و salam اومده میشن با وقتی که رسول صلی الله علیه و salam پای میه باز میخوانن اس کے تعالی علينا من فنيات الودع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا استقبال میکنه رسول خدا الله عليه وسلم جوان سیاپورسس جوان سیاپورسس غلام است وقتی که دشوارای اسلام میخوان که عقیده عزیرا بزور از قلبش بگیرن، بزور اینو در بین زندان داخل بکنن و تا از ترس زندان و ازلت و کو ای از عقیده خود منصرف شود لكن ای جوان باز هم منصرف نمیشند حضرت بلال رضی الله تعالی عنه که اونا هر قدر ایر لط میکران باز هم حضرت بلال رضی الله تعالی عنه میگه که احد احد خدا یکیست خدا یکیست و بر امیه ابن خلاف که ای امیه تو درست است که تانیستی که جسد مرا بخری و مرا قلامت بسازی، لاکن روح ما در تصرف خدای از زبانجل است هر قدر که میتانی و هر قدر زورت میرسن جسد مرا تعذیب میکن هر قدر میتونانیمرلوط ل بکن هر قدر که میتانی بالا در ریگستان مرا در ریگستان داغ داخواوته و سنگ بزرگ گ دستن شکم بان لاکن باور و ش که تو 100 سال هم اگر را بگوی باز هم مرا از یبییمتر دور کردن مییتانی و بلند بلند برش میگه او میکنه و, و این که احد أحد. احد احد خدا یکیست جوان دیگه میگن که جوان دیگر میگن که بخواه ازدواج بکنه ازدواج بکنه یه جوان پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یکی یا يا رسول خدا ما جوان شدیم. میخوام ازدواج بکنم. هیچ چیز ندارم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای رو به خانه یک کس روار میکنه. ای جوان آنقدر زیبایی نداره. چیرش قدر مقبول نیست. لکن ایمان داره. عقیده داره. وقتی که اونی شده پشت خانه از راه میره. که از پدر پر... چیز پرسانش میکنه. دروازه رو که تختق میکنه. پدر دختر پرسان میکنه. کی هستی؟ بگه ما فلان کس هستم. مرا پیغمبر خدا روان کرده. خواستگار که من دختر خود تبر خود خواستگاری بکنم. ای پدرش برش میگه که بچه این دختر من زیبایی که داره بای حسنی که داره. بای فکر و که داره بای سوار و تعلیم و تربیتی که داره. هیچ بسیاری جوانو را رد کرده. تو خواهد قبول کرد جوان فقیر چری که آنقدر چیری تا مسیبانه است این میخواه که بگرده که دخترش سلام میکنه که بدر این جوانه کی روان کردم میگه این جوان رسول الله صلی الله علیه وسلم روان کنه میگه من جرات نمی کنم که کسی که رسول خدا بر ما روان کرده من رد رو یک دختر با ایمان است برای از اینکه برو چیم آماراگی تبیی، وسایل تا چیزی که لباس مواز داری بر چور کو بیا مثل پدرهای امروز نیست که دختر فروش هستن و پدرهای که دختران خود می فروشن، بی غیرت هستن و کس که از دختر خسیلو و چورلک میگره بی غیرت هست بی ایمان است امت رسول خدا صلی الله علیه و نیست هر جوانی که زنا میکنه ایریش سفیدی که سر دختر خود استیلق و 4 لک نرخ می مونه او را حیوان وره و سرش او می نمونه و سرش تلار را و سرش لباسا را میمونه و سرش چه سال برنج می میمونه ایریش سفیدای بی ایمان هر زنایی که در قریه میشه در منطقی او میشه او جوان وقتی که نتونه ازدواج بکنه مبتلا به زنا میشه در روز قیامت ایریش سخی در جمعه زناکار هست چون این سبب زنا شده اصحاب پیغمبر ایمود ها و رواج ها را ترک کرده بودن جوان در مقابل هیچ چیز دختر خدا برازو تا جوان وقتی که میره که وسائل یکان لباس لباس بر خود بخره که سبا آروسیش است یک دفعه مشنوه که صدا میشه که حیا علی الجهاد بین به با طرف جهاد چی ابحث دشته وشکر مسلمان ها آمده هستن برای جهاد دشته وشکر مسلمان ها آمده هستن برای جهاد مسلمان جهاد جهاز میکنن بر خود لباس آورستی بکنم من لباس آورستی من برو بر آورستی مسلمان ها در رای خدا شید بشن مبرم. اون مسارف را که باید اون رو لباس برای آروسی خود بخورن از اون شمشیر سفر بخورن برای میله میره در میدان استاد بشه برش میگن که تو خود سبا آروسی دست چطور میگه من غیرت داشت در مقابل خدای عزبا چطور استاد خواهد شدم که چقسم خداوند در مقابل خدای عزبا جان استاد که بگوید مسلمان ها در جهاد هستن و اما در آروسی بدا به حال اون انسان هایی که اونجا سی ست, سی ست نفر امریکایی ها در به شهادت می‌رسن و اینجا مسلمانان که خدا مسلمان میگه، این که به حال از اونا گریه بکنه اینجا خیسته به خاطر دانشگاه و پوهندتون به خاطر دانشگاه و اینجا مزایله میکنه بدا به حال او جوانانی که اونجا مسلمان ها شهید میشن مسلمان ها در فلسطین در غذا شهید میشن در عراق شهید میشن در افغانستان توریست تروریستای آمریکایی و اروپایی کشته میشن شهید میشن خانهایشان از بین میرن و ب اینجا میبینید که این جوان بی‌خیرات و بی ایمان در اوتل میرقصه و خانوم خود هم میرقصانه و مادر خود هم میرقصانه و فامیل خود هم مردم در خون غرق هستند و اینجا میرست و وازد روز قیامت بگه که ای رسول خدا من امت تو هستم تو امت رسول خدا هستی رسول خدا صلی الله علیه وسلم برش مگه که بایی از زیر بیرقمه که این بایرق بی غیرتان است بایرق وطن فروشانه است بایرق کسایی که دین خدا عقیده خدا وطن خدا به خاطر پیسه فروختن این بایرق بایرق رسول خداست که با شهامت در میدان جهاد جهاد می‌کرد برای کافر میگو که تو کافر هستی برای وطن فروش میگو که تو وطن فروش هستی برای خائن که تو خائن هستی برای بی ایمان میگو که تو بی ایمان هستی و در مقابلش استاد میشد و تا آخرین قطرات خود خدا می ای جوان بالاخره در میدان معرکه به شهادت میرسند اتونه ایست که ما در افغانستان مثل تو جوان وارد نداشته باشیم شما وقتی که از نطقی پلچرخی کمک پیش برید اونجا بس سرک یک قبر است یک جوان بود به نام فیصل آروسیش است در زمان دو آروسیش بود فامیلش از منطقه سروبی آمدن به کابل لباسو، و سعودا و برنج روغن گرفته بودن که آروسی عزیز برازی گفتم که فیسر آمر از اون منطقه بود. نه تن فایسل. عملیات قوای روز تیمی این منطقه. باید عملیات میشد. که عملیات کنیم که سبا آروسی توست فایسل میگه ما با خاطر خود بکسارم که قوای روز داخل منطقه شده. عملیات می کنیم نمی کنیم نه می, می, می الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه خدای عزوجل از مسلمانها مالهایشان را و جانهایشان را خریدن در مقابل چیزی ان لهم الجنه در مقابل جننه اگر جنت می خواهم، باید از خون خود از جان خود تیر شوم، از مال خود تیر شوم تا اینکه در مقابل ازی خود رضایت خدای عزوجل قسم بکنم فیصل آمالیات شروع میکنن بسیار مصار مردار میکنن وقتی که روسا مردار میشن شام شماست که فیصل که سبا و است فیصل به شهادت میرسند مسارف آروسی فیصل تکیه تکیره که فیصل باید در شابودن خود در وقت نگاه خود بی پوشید از او تتر در سر چارپایی و از او برش کفنجور میکنن از مسارف آروسیش بر فیصل مسارف مرگوش نازیش دهیه میکنند پاعت جوان با شخمت هم داشتیم ولی متاسفانه که ولی متاسفانه که ما کسایی داشتیم که با ریشا و با ها و با چیره های خود خود تسلیم امریکا کردند. در وقت آشورا که از ظلم یزید صوبت میکردن و یزید عصر که از یزید خطرناکتر و بدتر و زشتر است یزید خود گفت ما مسلمان هستن لیکن ای زد اسلام و زد قرآن و اولین ناملی که امریکایی در عراق میکنن سر مزیدهاشون مزیده های ایراق از بین میبرن برای استقبال میکنن و برشمدال می میتن و در بغل خود میرن اینا باید بفهمن که در روز قیامت از زیر بیرقی لا الهی لالله کشی خواهد فرق فرقست بین اوفیسل و بین جوارای امروزی ما بین او صحابی صحابی دیگه آروسیش آرسیش میگوشه بی سوف بیشی که غسل بکنه پیش ازی که غسل بکنه اون غسیل الملائکه میگه پیش ازی که غسل بکنه صدا میشه که حیا علی الجهاد حرکت کن و جهاد ای جوان حرکت میکنه وقتی که میره در میدان جهاد به شهادت میرسه در میدان شهادت جهاد شحاد به شهادت میرسن خانمش متعصفر میشه که ای خوب انوز خاصل نکرده بود ولی وقتی که جنانشی ساید میکنه که بیان برای خدا برش میگه که این خود ملایکه ها شده بین از اون جوانی که اون ملایکه ها میجوید فرق بین او جوان که ملائکه ها بر از او احترام میکنن فرق از بین او جوان که هورهای جنت در وقت قبض روحش حاضر میشن و فرق بین او جوان که بیرکسن خدا رقا سمی سازن خدا در مقابل پیسه میفروشن تاریخ اسلام تاریخ شجاعت و قهرمانی جوان جوانایی که مثل اصامه ابن زید اصامه ابن زهی جوان است، ساله جوان است ساله وقتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم قوتهای اسلامی را آماده میکنن کجا از جنرال اسلام کجا از جنرال اسلام که رهبری ای قوتهای اسلامی را به دوش میگیرن و بر روم لشکر قیادت و رهبری بکنن در اینجا بازم پیغمبر خدا جوان عجر اجسالی به نام اسامه ابن زید تعیین میکنه که ابوبکر صدیق و حضرت عمر و حضرت علی و حضرت عثمان و کبار صحابه در پایین در حرکت هستند و اسامه سر اسب سوار است و حرکت میکنه. یاسن. جوانو در اگر اصاب بکنیم به هزارها هزار جوان است که هر کدام اسرال من حیث کهرمان ها کهرمان نه تنها در قوت و شهامت بلکه کهرمان در ایمان کهرمان در توا کهرمان در خیر، کهرمان در نیکی کهرمان در توحید، قهرمان در تمام ساحات زندگی و تانستن که حتی دین مقدس اسلام حتی به منطقای بسیار دوردست دست امروز ما که مسلمان هستیم جامل ان میمی انصار جوانایی هستند که این جوان ها بودند که نماز در مکیم و چه چقدر ثواب دارد ترک کردند در مدینه منوره ترک کردند به خاطر رساندن حق آمدند و در اینجا شهید شدند اگر او جوان مثل اولی بعدی جوانایی کلی خدا شو میده و بوغه میکنه و تو باد میشه و قوارش عجیب غریب است اگر این قسمی می بودن در اونجا به اینو اسلام نمیرسید اونا آمدن با اونمو شجاعت و مطانت و خیلیت و قوت اونجا آمدن و تانستن که بلیق اسلام و در افغانستان و در پاکستان و در ایران و در کل جایه بلند بکنن از این خاطر جوانای محترم ما شما هر کدام ما باید از این شاگردای مکتب نبوان درس بگیریم تعلیم بگیریم از این استفاده بکنیم و خوشا به حال شما که دعوت روزهایه که روزهای فساد است و دشمنای اسلام می که اینها جوانا را منحرف بسازن لیکن الحمدلله این جوانای ما هیچ وقت منحرف نمیشن و کلشان با یک صدا و صدای بلند کل ما که الله اکبر الله <تصفيق> اکبر ذات واحد کیست Allah. ذات رحمان کیست Allah. ذات محیمن کیست Allah. ذات غفار کیست Allah. ذات قحار کیست کمر امریکا را کی خواهد چکستان کمر دشمن اسلام کی خواهد چکستان الله هست که کمر تمام از این ها سبحان مشکره سبحانه را بکره ما مایسیفون و سلام و المرسل